بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیه که ابن الحسن سلاماتی علیه و علی آبائه فی آز ساعته و فی کل ساعته ولیه و حافظه و قاعده و ناصره و دلیله و عینه حتی تسکنه و و و دعه و ها طویله منور شدن جلسه و قلوب حضار و انوار هدایت حضرت وقیت الله العظمت جهن الله تعالی فرجه و شریف و تجلیل در فرج حضرتشون به ذکر صلوات محمد و آل محمد الله تعالی شلا محمد و آل محمد فرج فرج قدیم محضر آقا و مولا و نمیرد ممدنین علی ابن حبیب طالب و بیبی دو عالم خانم فاطمه زهره سلام الله علیها به نیابت از آقامون قمر بنی هاشم صلواتی خدمت بفرمایید الله تعالی شلا و همه و گرفتاری از همه دوستان امیر المومنین الله، حکی تو این عالم آقامون امیر المومنین دوست رزی فتنه های آخر و زمان نجات پیدا بکنه محضر بی بی دو آلم زینا به و سلامالله علیه ها صلوات خطف محضر الحمدلالله خدا رو شاکریم منت سرمون گذاشتن اجازه دادن به فضل حضرت زهرا سلام الله علیها ده شب دوره هم جمع بشیم که رفض آیل من آقا و آقا آبا اون امیر المومنی ندیب نوی طالب و مساحب سید و شهده قد بدونیم این دهمات رو اول سخن کسف ایجازه می کنم درس فصل محصر عزیز دلم بیعدوی می کنم جایی شاگری دارم محصر ایشون انشاءالله که این بیعدوی من رو ببخشن حسر و الله حسر امره ایشون اجابت کرد. اما انشاءالله قد بدونیم این جلسات و این روزه ها رو خیلی حرفه معمولا شب آخر هر جلسه ای پنش شبی، سه شبی، ده شبی اصطلاح حالا آمیانه یعنی شب موزده و در ماه استعاره شده که ما موزده هزار داری خیلی قدر این جلسات رو باید بدونیم چون یه حقیقتی تو عالم وجود داره به نام صدیقی کبرا سلام الله علیه ها این حقیقت تو عالم بی نزیره بحث دیشم همه به دعا بیدم ولی اینو مقدمه عرض بکنم که رفقا وقتی که می فرماین صدیقی تاهره حجت الله علل حججه حجته بر امامانه او فاطمه است ام امیر امیرالمومنین علی بن ابی طالب استی که رسول الله و او میگه ام عبیها خیلی حرفه تو روایت نورانی من این روایت رو بگم دیگه خیلی بازش نکنم وقت نیست وقتی امامان ما یعنی یک وجودی مثل سید الشهادا بهجوری حسین ما زمان میفرمایند ما ائمه ستاره ایم کواکبیم پدرمون علی قمر است ماه و پددمون رسول الله شمس است خورشید چه شد ما اهل بیت امیر امیرالمؤمنین ماه هست رسول الله خورشید است فسمای الفاطمی تو آسمون حضرت زهرا سلام الله علی خیلی بزرگوارند میشوند نور صدق خدا فرمود تو پیغمبر رو از نور ذات خودم خب کردم چی میخواد تو آلمی حقیقت رو بفهمه؟ حالا این رو باست دارم میگم؟ حسین دارم میگم که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی شما میشینید بر جد ما عبا عبدالله الحسین گریه میکنید مادرمون فاطمه زحرا سلام الله علیه ها رو یاری کردید مادرمون زحرا شما رو دعا میکنید خودشون فرمودن هر جا دو نفر میشینن تو کاملو زیارات رقایت دو نفر میشینن بر سید و شهدا گریه میکنن نفر سفم سبدیقی تا آهیر سلام الله علیه ها خیلی حرف هم نشین فاطمه شدن کار هر کسی نیست لیاقت هر کسی نیست انبیا و اولیا دنبال اینها بودن به لطف روزه سید و شهدا به برکت عشق برا و عبدالله اجازه پیدا میکنی همنشین صدیقی تا آخره بشیم ممنوندار این جریان بشیم ممنوندار از امام زمان از از زهرها بشیم اجازه دادن تو این جلسات بشیم اما بحث دیشب ادامه این بحث گفتیم که اگر میخوایم وادی ورود پیدا کنیم به وادی مقربین در دستگاه سید و این قلبمون نمیتونه بخشیش برای امام حسین بشه بخشیش برای کسی دیگه این زیارات باید بگی همه زندگیم فدای توئه این جامعه کبیره این زیارت عاشورا به ابی انت و امی و در زیارت جامعه کبیره چی میخونید ابی انت و امی و نفسی و مالی و اوس همه چیزم هم. اول ابسر که پدر مادر هر عزیزی و هر چیزی میتواند تو دلم باشه که دوستش داشته باشم فدای تو یا اهل بیت یا سیدوش هر بخشی که غیر از این باشه یعنی بالاتر از اهل بیت ما دوست داشته باشه اون بخش تحت ولایت شیطان و تحت ظلمت این باید از بین بره دیشب عرض کردیم چی هم که ما گناه مرتکب میشیم، از همون تیینتی است که از غیر اهل بیت و الا که خود بوم الفاضل تینت ناس فرمودن شما شریان از ادامه گل ما خلق شدید یعنی نمیتونه گناه بکنه که تینتی که از ادامه گل اهل بیت از ادامه گله امیر از ادامه گل امام زمان چجوری گناه بکنه تو روایاتی که تو کتاب شریف اصول کافی حدیث 1445 تا 20-30 تا روایات بعد از اینم راجب این موضوعه باب تینته عزیزان که اهل مطالعه هستا رو باو اونجا اونجا مطالعه بکنید مساوا اونجا خدا تو اهل از ناحیه خدا توضیح میدن که چه اتفاقی در خلقت میفته که این تینت ها با هم قاطی میشه یعنی در کنار تینت اهل تینت های دیگری هم وجود داره که به واسطه بودن این تینت هاست که ماها مرتکب گناه و از اینها ساته میشه. انسان میتونه گناهش رو ترک بکنه که این تینت ها رو از بین ببره و همه یه وجود و تینتش رو بکنه تینت احلی بید همه اصطلاح فانی شدنی که در اصطلاح ارفاه هست تا این اتفاق نیفته ناخالصی وجود داشته باشه لحظه ی آخر ممکنه اشتباه بکنه همه یه ارواب مقاتل نمیشن زهر آشورا به امام حسین ور میگرده میگه که یا آبا عبدالله الاز ظاهر داری کشته میشی شما قمر و نیهاش شهید شد سیده شما میفرمویم جز شهادت چیزی برای امانه بود فکر فکرم شما زنده میمونی در لکابت داشتم میجنگیدم اگه میخوای شهید بشی که من می و میرم و میره و آبا عبدالله میفرمویم برو که دور بشی صدای حل به من, من نشتنی چرا؟ هم نسبت به امام زمان همینطوری اون فردی که بایدن دنبالش خیلی دوستش امام زمان رو ببینه ساب و فروش بود ساب ساز بود زمان قدیم اینجوری نبود که اصلا بیاد گلنار و بسمندی و این را باشه این قدیم درست میکرم میذاشن بالا پشتگون با خوش میشود و بیفرگدن اومد گفت که خیلی امام زمان رو ببینی گباره را از اون صبح یاده رسیدن نماز خونن حرکت کردن داشتن میرفتن سمت خیمه امام زمان دید داره آفتاب میزنن که فران من سابونام بالا پشت اونه اگر آفتاب بخوره خراب میشه بذار برگردم بعد بریم برمیگرده سابونا رو جمع میکنیم برید اون بنده خدا نیست این سابونا تو زندگی هممون هست این دقیقه 90 ها ای آقا فران چیزم محبت پدر و مادر حتی اگر زیل محبت اهل بیت نباشه الهی نیست. والتر ازون گفتم که والتر ازون ندونه ما این ماها کجا گیریم؟ محبت رفیق، محبت دوست، اینا همه باید ذیل محبت اهل بیت باشه که تو عالم کارگر باشه. اگه بالاتر از محبت سید شهدا باشه، بالاتر از محبت اهل بیت باشه، تو زندگی زندگیا دردسر ساز میشه. تو لحظه های حساس که باید خودت و امام زمان بکنی گیر بکنی ما همه میگیم یبنال حسن یبنال حسن یبنال حسن اما حقیقتاً مزتر امام زمان نیستیم چون اگه مزتر امام زمان بودیم ظهورت پیدا میگه هنو گیریم خیلی ها. باید این گیرا رو پیدا کنیم حالا غیر از این گیرا و گناهایی که تو وجود ما، هر چه جوری آقا، از ببریم این گناه ها رو. عرض کردم خدمتون روایت از موسی بن جعفر میفرمایند ظاهری که و درخت و شجری که ازش گناه ساطع میشه، که همون تینتی که تو وجود شماست، بعد اون درخت خوش میشه. که میوه این درخته چیه؟ دروغ غیبت نگاه و نامحرم بیهترامی پدر مادر نه میوه های این درخت است. چیکار کنیم این درخت خوش بشه باید این سراغ اهل بیت دکتر و طبیب واقعی اهل بیتن اگه بخواید بیدید سراغ هر دکن هر که این دکن را انداخته بگه نمیدنم راه ما این است و طریقت ما این است و سلوک ما این است این اینا دکنه اون چه که اهل بیت میگن راه رسیدنه خود تا کسی نکن چقدر مگه اومد اوم که خواهی اللفه کسی بشی که آقا راه اونو بری و طریقت اونو بری میروی سراغ موسب نجعفر موسب نجعفر علیه السلام میفرماین اگر گناه مرتکب شدی خاصی توبه بکنی این گناه عمل کنی یک استغفار کن او با پشیمونم حالا پشیمونم گناه از بین میره؟ نه این می واسه ای چی؟ واسه این که عوارض گناه هست بیم بره داروی اصلی که ریشه رو میسوزونه چه خوش کنه حقیقیه ریشه بیماری رو میسوزونه بعدیه میفرماین لعن کنید دشمنان ما رو بعد در قسمت سوم میفرمند عهدتون رو با ما تجدید کنید این تقویتی است بدن ضعیف شده حالا باید تقویتی بود ولی او چه خوش کنه که ریشه گناه میسوزونه چون اونا مبدع گناهند یعنی چی؟ وقتی میگی کل کل خیر ذکر رو عرض کنم که کل خیر فی بابل حسین علیه السلام و آن صادق میفرمایند فرمایین یادتو جامعه کبیره که زکر الخیر اصله و فرعه و اوله و آخره همه اینا خیر هرچی از در خونه اهل بیته از اون تر هر چه بدی تو عالم هست و بدی تو عالم وجود داره مبدعش عیمه کفره دست دوش منانش تو احادیث باب تینت تو همه کتاب های روایی ما مخصوصا کتاب کشف الاسال الله محمد علی طالقانی خیلی سریع توضیح میده رفقا این نکته یه تون باشه من همیشه گفتم اگر میونی بزرگان ما بزرگان دینی ما بزرگان سیاسی ما بالا منبر تو معذنه ها تو تلویزیون یه حرف میزنن بابت وحدت و اینا همه تقیه است ما قبول داریم ما شیعه دینش دینه تقیه است. اما محول محفل محفل شیه محول محفل محفل دوستان امیران معمولینه اونا مانکر نیستیم باید حواس جمع باشه شیعه احل تقیه امام رضا وان خدمت امام رضا گفتند ما شیعه امام رزا گفتن گفتند بلنگ شید برید شما شیعه نیستونه چرا باید تو تقیه نمیکنید چون خودت مظیّت میکنی خودت خطر میندازید یه حرفه ی بزرگان ما میزنن ما پایبندی بهشی شیعه باید باشه تو ما جامعه عمومی سر اهل بیت نباید فاش بشه فرمودن اگر سر ما رو فاش کنی تو خون ما شریک از حواس جنگ موساب نجفر از دست شیعیان تو زندان افتادن از بیفکری و یقلی بی شیعیان دهن ده لقی شیعیان دهن ده لق نباشید رو بریز به بپاش نکنید ولی حقیقت هم بدونید که نباشه حقیقت هم نفر حقیقت اینه که روایت میگه مبدع همه ی بدی ها تو آلم وجود منحوس اولی و دومی لعنه تو لاحاله و هر چه ساته میشه بدی تو آلم از این وجود و هرچه خیره در خونه اهل میتونی. اگر طبق روایت اگر میخوای ریشه گناه و ریشه تینت بد تو وجودت خوشک بشه باید اصل شیعه را داشته باشی. اصل شیعه چیه؟ تا وقتی محب باشی بهت نمیگن شیعه. چرا میگن امام صادق رئیس مذهب شیعه درس درست پس محضر از سادق. چرا نمیگن ما شیعه علویم؟ چرا نمیگن ما رضوییم؟ چرا نمیگن مهدوی؟ خیر نا خب نظیف‌تر هم هست. حالا دعوام که صدر نه این وسط چرا میگن ما شیعه امام صادقیم؟ چرا امام با... میگن امام خب آره روایت خیلی داره. خب روایت امام باقر بیشتر از روایت امام صادقه. میگن ما شیعه امام باقریم. چون تا زمان امام باقر هنوز مرزی بین شیعه و غیر شیع نبود. قیرشیا شیعه بیت تو دوست داشت اینی که تو کتاب تاریخ تبری و ابن مسعود و اینا میخونی که یک سوم اهل کوفه شیعه بودن زمان سید و شهدا و واقعی کربلا چه ای بودن؟ اینجوری اصناعشری نه شیعه بوده که محب اولی و دومی و سومی بوده و علی رحم هم دوست داشته این شیعه نتیجهش میشه واقعی کربلا تا زمان امام باقر میفرمایند که امام باقر اهل دین الا الهب تا اینجا میاد. الا هنوز مرز شیعه. در زمان امام صادق است که مرز شیعه و غیر شیعه مشخص میشه که میفرمایند حل دین الا الهب به ول بخص. اومد خدمت امام صادق گفت من خیلی شما رو دوست دارم از کجا بفهمم چقدر دوستتون دارم؟ امام صادق فرمودن ببین چقدر نسبت دشمنان ما بیزاری. یعنی ملاک حب به اندازه ایست که درستت به دشمنان بغز داری شیع این که میبینی شبکه های وحابیت شبکه های اهل سنت تو ماهواره همه حرفشون اینه که ما شیعه صفویه هستیم یعنی ایرانی شیعه نیستن که ما با شیعه مشکل نداریم این ها شیعه صفویه چرا؟ چون اینا ها بغز دارن شیعه بغز نداره شیعه اگر بغز نداشته از اصلا نیست. شیعه است که خط و مرزش مشخص باشه بین دشمنان امیرال امیر مومنی اصلا آقا توحید هم با لا شروع میشه لا اله الا الله. اول تبر, تبر،, تبر را بعد تبر زیارت آشورا که میخونی اول صد مرتبه لعن میکنی بعد صد مرتبه سلام میدی خدا رحمت کن از تایی تو و تو بی فرمودن رفتن خدمتشون گفتن آقا لعن مقدمه یا صلوات شون فرمودن اول باید خانه رو خالی بکنی بعد مهمان دعوت کنی ما یادمون رفته که تو وجودمون اول باید دشمن رو خالی بکنی آقا تو وجود ما دشمن چی کار میکنه روایاتی که تو که کشور اصرار هست سریعتاً به همین اشاره میکنه روایات توی بسایر و درجات به همین اشاره میکنه و کتاب کتب روایی ما میگه تو وجود همه تینت هایی وجود داره که منتصب به غیر اهل بیته و ممکنه این تینت ها از تینت های آلوده دشمنان امیرالمومنین باشه چون گناه از این تینت ها میشه بدی از اینا ساته میشه دروغ از اینا ساته میشه و اینی که میگن اگر تو دروغ بگی تبعیت کردی از دومی مل اون. یعنی امامت شده دومی مل اون لعنتو لا حلی اگر قذب کردی داری تبعیت میکنی از اولی مل اون در مادر داد میزنی داری تبعیت میکنی از اولی اگه میخوای واقعا اهل لعن باشی اهل بغض باشی گناه نباید بکنی طبعیت نباید بکنی از غیر اهل بیت اگه میگه نماز حجت چون امیر المومنین من هیچ رویسه نماز دوست ندارم چی میگی؟ آقا امیر المومنین عشقمه نماز رو دوست داره من اول وقت میخونم قشعه میخونم طبعیت از امامه اما چون میگی بدم میاد متنفرم از دومی و او دروغ منشه دروغه او منشه قیبته او منشه زناه چون روایت میگه هرچه شهوت از شهوت جنسی شهوت مالی شهوت شهرت تو امور بدش باشه مبدهش دومی ملونه پس اگر میخوایم حب و بغ سوال داشته باشیم اگه میخوای شیعه شیع باشی باید به این گناه نمی کنم به عشق صدیقه طاهره سلام الله علیها چون اینا مبداش دشمنان اینان و تو زندگیاتون این که می روایت میگه صبح که از خواب پشدی بگو الله من جبته و که در روایت میگه این جبته و اولی و یا دوبا می چقدر ثواب و چقدر حسنه داره به خاطر که سر صبح که بلند میشی مرزبندی تو بین شیعه و دیگران مشخص میکنی بین خوبی ها و بدی ها مشخص میکنی بین ثواب و گناه مشخص میکنی میگی من محب علیم عاشق خوبی ها و دارم نسبت به دشمنان حضرت زحرا سلام الله علیه و از بدی ها بدم میاد دوستان سید اگر میخوای مقرب در خونه سید و بشی نمیتونی علاقمند به گناه باشی و محب حسین بشی ممکنه انسان از قفلتی و یه گناهی انجام بده حواسش نبوده اما اگر محب امیر المومنین آمدن یه حرکتی رو انجام بده دنبال گناه بره چطور میخواد جواب امام زمانش رو بده میگم من محب حسینم به بدیهام علاقه دارم ارزم تمام شب آخر جلسات درس کردیم اون دل خونه از حضرت سلام الله علیها من روزه از صدیقه میخونم عزیزان هر روزی که مایل بودن میخونن اصلا جمع بخونن روزه همه رو بخونن برکت جلسه‌مون زیاد بشه این ارتباط خاص سید و و صدیقی تاهر سلام الله علیه ها همون ارتباطیه که یوم القیامت هم دوستان وقتی پیغمبر میخوان شفاعت کنن امام باغر علیه السلام میفرماین علی جان به فاطمه بگو چی برای شفاعت آوردی مخصد دیگه تاهر سلام الله علیه ها دست چادرشون میبرن دو دست مبارک قمر بنی هاشمو در میارن پدرجان این سند مظلومیت منه اینو برای شفاعت امتو بردم نمیخوام روزه قمر بنی هاشم بخونم هرچند جا داره بدم روزه آقا قمر بنی هاشم شب آخر بخوره. وحس کنه به روزه از زهرا وقت ندارم من برم مدینه امام صادق علیه السلام فرمودند خلقت مادر ما انسیت الهوراست گفت آقا جان انسیتشو میدونم و هورا یعنی چه فرمودن یعنی اگه برگ گلی روی پوست مادر ما بنشینه جاش میمونه الهی بشكنه دستت مغیره الهی بشکن دستت مغیره سی سال گذشت از واقعی مدینه حسن مشتبا با سید و و قمر بنیهاشه وارد مسجد میشن شروع میکنن و مردم سلام علیه کردن میرن جلو یهو میرسه امام حسن به ما روشو برمیگردونه بر میگردونه. یه نفر تو جمعیت داد میزنه حسن مشتبه یبن رسول الله سی سال گذشت هنوز کینه به دل داری امام حسن فرمودن شما تو کوچه نبودید این ملعون چه کرد <تصفح> میاد خدمت امیرالمومنین یا علی خسته شدم میخوام برم امیرالمومنین میگن فزه فاطمه منو ترک کرد تو هم میخای ول کنی بری <تصفح> میگه علی جان به چادر مادرش رو سر میکنه رو سجاده مادرش میشینه گریه میکنه حسین گریه میکنه اما حسنت همینجور ظلم میزنه به در مشکره میکنه بغز میکنه گریه نمیکنه، داره منو دیوانه میکنه نمیدونم برم اونجا تو اون ها یا نه اما رفقا یه کتابی هست به نام اثار ال محمد تو این کتاب این کتاب مال سلیم ابن قیسه زمان خود امیرالمؤمنین نوشته شده کتاب کتاب سقه و سندی است اهل بیت کتابو تایید کردن. لا و لا تو این کتاب نوشته ریختن در خونه امیرالمؤمنین در خونه آقا را آتش زدند 3 دقیقه تاهر رفت پشت در به در حمله کردند در رو شکستن وارد خانه شدند نمیگم چی شد حقیقتا این روزه ها در اندازه دهن من نیست فقط اینو میگم نوشته تو کتاب ناگهان فاطمه زهرا سلام الله علیها فضه رو صدا کرد اما یه لحن عوض شد شروع کرد پدر رو صدا کردن ابتا ابتا هیات بیت الزهراء سلام الله علیه.